یعنی که حالا با مشاهده موفقیت حری دل و پیدا کرده بودند با احتیاط از نرده بالا رفتند و وارد محوطه شدند مالفوی، کراب و گویل سراغ کجمنگار رفته بودند کجمنگار جلو مالفوی خم شده بود و او با انزجار منگار جانور را نوازش می کرد. مالفوی با لحن کشدارش و با صدای بلندی که به گوش حری برسد گفت چه آسونه وقتی پتر تونسته پسش بر بیاد بایدم کار آسانی باشه شرط می‌بندم تو اصلا موجود خطرناکی نباشی هیون درسته؟ تو خیلی خطرناکی هیونه ایک بیری گنده زشت؟ چنگال تیز ایپوگریف مثل برق در هوا حرکت کرد و مالفوی جیغ بنفشی کشید لحظه بعد هاگریت با کجمنگار کلنجار می‌رفت تا بگذارد قلاده را دوباره به گردنش می خواست هرچه زودتر خود را به مایفول برساند که با لباس خونالود روی چمن افتاده بود مالفوی نعره میزد دارم میمیرم دارم میمیرم ببین منو کشت همه متوحش بودند هاگریت که مثل گچ سفید شده بود گفت نه ترس نمیمیری یکی بیاد کمک کنه باید زودتر از اینجا ببریمش هاگریت مالفوی را بلند کرد و هرمیون دوید که در را باز کند وقتی از جلوی هری گذشتند، او توانست زخم امیق و بزرگ را روی بازوی مالفوی ببیند هاگرید دوان دوان از سراشیبی به سوی قلعه بالا میرفت و خون مالفوی روی چمنها میچکید هری به گروه اسلایترین چشم دخته بود کراب و گویل و بسیاری دیگر دوره هم جمع شده سخت مشغول گفتگو بودند هری اطمینان داشت که آنها میخواهند حرفهایشان را یکی کنند و ماجرای زخم شدن مالفوی را با آب و گزارش دهند بعد از شام هری رون و هرمیون هر سه به سالن عمومی رفتند و سعی کردند تکالیفشان را انجام دهند اما هر چند دقیقه یک بار یکی از آنها از جایش بلند میشد و از پنجره برج بیرون را نگاه میکرد. ناگهان هری گفت چراغ اتاق آگرید روشنه و بعد هر سه به سمت کلبه ای او رفتند همین که وارد اتاق شدند هری گفت ما شاهد بودیم تو گفته بودی که کسی نباید به ایپوگریف توهین کنه تقصیر خودش که به درس نبود ما خودمون به دامبلدور میگیم که واقعیت چی بوده مطمئن باش اخراجت نمیکنن. رون گفت آره هاگرید نگران نباش ما از طرفداری میکنیم. از گوشه چشمای چروکیده هاگرید اشک ترازی شد و هری و رون را در آغوش بشد. مالفوی تا روز فهم به بهانه باند پیچی دستش سر هیچ کلاسی حاضر نشد فردای آن روز، هنگامی که به کلاس درس دفاع در برابر جادوی سیاه وارد شدند پروفسور لپین هنوز نیامده بود همه نشستند و کتاب قلم پر و لوله های کاغذ پوستیشان را جلوشان گذاشتند. وقتی پروفسور لپین از وارد شد همه مشغول گفتگو بودند. کیف رنگ رو رفته و کنهاش را روی میز اساتید گذاشت. لباسش مثل همیشه مندرس بود اما خودش نسبت به روزی که سوار قطار بودند سرالتر به نظر میرسید. لپین دانش آموزان را به انتهای اتاق برد. در آنجا چیزی نبود جز یک باری کنه، که اساتید اضافه شان را در آن میگذاشتند وقتی پروفسور جلو رفت تا کنار گنجه بیستد گنجه تکانی خورد و محکم به دیوار کوبیده شد چند نفر از جا پریدند و عقب رفتند لوپین به آرامی گفت نگران نباشید چیز مهمی نیست تو این گنجه یه لولوخورخوره است همه نگران و مزدرب به نظر رسیدند لوپین ادامه داد لولو ها جاهای تاریک و بستر خیلی دوست دارند این یکی دیروز اومده. من از مدیر مدرسه خواهش کردم به اساتید بگه کاری به کار اون نداشته باشن تا ما بتونیم باهاش تمرین کنیم. لولو لولوخرخره هیچ شکلی نداره. وقتی با یکی روبرو میشه سریعا خودشو به شکل اون چیزی در میاره که طرف ازش میترسه. تنها کاری که باید بکنی اینه که تا با یه لولو لولوخرخره مواجه شدین اونو وادار کنین که به شکل موزکی در بیاد. یعنی مثلا اگه از یه آدم خار میترسین تو ذهنتون تصور کنین اون آدم خار چجوری خنده دار میشه؟ میتونین تو ذهنتون براش یه کلاه مسخره بذارین یا یه دماغ این دلغک ها باسش تصبر وقتی این کار کردین باید بگین ریدیکیولیس با این ورد شر اون از بین میره بعد تمام بچه ها را بادار کرد تا با او روبرو هر کس تصویری موسک از رولو خرقره میساخت وقتی نوبت به هری رسید تصویر هولناکی در ذهنش جان گرفت او از هیچ چیز بیشتر از دیوان ساز وحشت نداشت لوپین لولو را با حری روبرو کرد اما پیش از آن که حری به ذهنش را متمرکز کند ورد را خواند و لولو را تسلیم کرد وقتی کلاس تمام شد حری چندان سرحال نبود آیا پروفسور لوپین عمدن نگذاشته بود او با لولو تمرین کند؟ آیا به این دلیل بود که شاهد از روشتان زهری در قطار بود؟ آیا فکر میکرد ممکن است هری دوباره بیهوش شود؟ در آغاز ماه اکتوب هری سرگرمی دیگری پیدا کرد این سرگرمی چنان جالب و لذت بخش بود که خستگی و کسالت کلاس‌هایش را جبران میکرد چیزی به آغاز مسابقات کویدیچ نمانده بود و تیم گریفندور با عزمی راسخ جلسات تمرین را آغاز کرد. بازیکنان هفته سه شب به تمرین می پرداختند چرا که تیم گریفندور هفت سال بود برنده جام نشده بود. اما این سرگرمی به تلخی تبدیل شد، چرا که همه دانش آموزان قرار بود آخر هفته به هاگوزمید بروند و هری برگه نامه نداشت. حتی جشن هالوین نیز جذابیتش را برای هری از دست داده بود. اگر هری نیز همراه با سایرین بعد از گردش در هاگزمید به جشن می آمد مزه دیگری داشت هاگزمید شهر تفریحی جادوگران همراه با انواع و اقسام تنقلات تفریحات و موجودات جذاب جادویی بود که هری از رفتن به آن باز می ماند. هیچ کس نتوانست او را دلداری دهد ده حتی پروفسور مکگونگال نیز حاضر به امضای نامه هری نشد رون پیشنهاد کرد که هری از شنل نامری استفاده کند اما هرمیون بلافاصله مخالفت کرد و حرف دامبلدور را یادآوری کرد که گفته بود دیوان سازها آن سوی شنل‌های نامرئی را میبینند صبح روز هالوین هری از خواب بیدار شد و انگامی که همراه با سایرین برای صرف صبحانه به طبقه پایین میرفت بی اندازه افسرده و غمگین بود. بعد از اینکه اغلب آموزان راهی هاگرید شدند، یک نفر از داخل یکی از اتاقها او را صدا زد. هری برگشت و بلافاصله چشمش به پروفسور لوپین افتاد که از دفترش بیرون آمده بود و به دنبال او میگشت چیکار میکنی هری؟ رون و هرمیون کجان؟ هری با بی گفت رفتن هاگزمید لپین لحظهای به هری خیره ماند و بعد گفت بیا تو بعد از اینکه وارد اتاق شدند و نشستند لپین گفت از چیزی ناراحتی هری هری به دروغ گفت نه سپس جرعه چای نوشی بعد ناگان لیوان چای را روی میز لپین گذاشت و گفت اون روزی رو که با لولو میجنگیدیم یادتونه؟ چرا اون روز نهذاشتین با من روبرو بشه؟ لپین که متعجب شده بود ابروهایش را بالا برد و گفت فکر میکردم دلیلش واضحه هری که انتظار داشت لپین به کلی ممکن این موضوع شود جا خورد و پرسید چرا؟ خب برای اینکه فکر میکردم اگه دولو با تو روبرو بشه به شکل ولدمرد در میاد هری ما تو او را نگاه میکرد تنها کسی که غیر از خودش این اسم را بر زبان می آورد دامبلدور بود. لپین ادامه داد اما از قرار معلوم اشتباه می کردم. من این فکر رو کردم که اگه ولدمورت اونجا ظاهر بشه بچه ها به وحشت میفتند. هری صادقانه گفت اتفاقا اول به ولدمورت فکر کردم اما بعد یاد دیوانه سازها افتادن. لوپین لپین که به فکر رو رفته بود گفت این معنیش اینه که چیزی که بیشتر از همه تورو خود ترسونه در همین لحظه زربهی به خورد و اسنیب به درون اتاق آمد. از جامی که در دست داشت بخار کمونگی بیرون می آمد. با دیدن هری سر جایش ایستاد و چشمایش را تنگ کرد. لپین لبخند زد و گفت دستت درد نکنه. میشه لطفاً بذاریش رو میز؟ اسنیب که نگاهش را از لپین به هری و از هری به لپین میانداخت، جام را که هنوز از آن بخار بر خواست روی میز گذاشت و گفت. یه پاتیل درست کردم اگه بازم خاستی هست و با قیافه عبوس و جدی از اتاق خارج شد. لپین جام را برداشت و معجون را بو کرد. بعد جرعه از آن نوشید و برخود لرزید و گفت این روزا رنگ و روم خیلی پریده و این معجون تنها چیزیه که حالم بهتر میکنه. خیلی شانس را که اسنیپ هم هر جادوگری ترد تیهی این معجون رو بلد نیست. چند ساعت بعد از خارج شدن هری از اتاق لوپین رون و هرمیون با مقدار زیادی تنقلات رنگ و رنگ جادویی از حاکزمیت برگشتند اما وقتی به ساران گروه خود رفتند که تابلو بانوی چاغ از آن مراقبت میکرد همه را سرگردان دیدند رون با کنجکاوی پرسید اینجا چه خبر شده لحظه ای بعد پروفسور دامبلدور سوار بر جارویش به طرف تابلو پرواز کرد هری رون و هرمیون جلو رفتند که ببینند چه مشکلی پیش آمده است وا، خدای من. هرمیون این را گفت و بازوی هری را فشار داد. بانوی چاق ناپدید شده بود و تابلو چنان با قصابت درد دریده شده بود که خورده ای تارپود تابلو روی زمین دیخته بود. دامبلدور به سرعت نگاهی به تابلو انداخت و برگشت. هورن و اندو در چشمانش موج میزد. در همان لحظه پروفسور مکگونگال، لوپین و اسنیپ از رسیدند و با عجله به سویش رفتند. دامبلدور گفت: باید پیداش کنیم همه تابلوهای قلعه رو بگردین تا بانوی چاغ رو بیارین این کار کار بلکه در چند روز بعد همه دانش آموزان از یک چیز حرف می زدند سیریوس بلک مسابقه کویزی چنان محبوب بود که طبق معمول همه مدرسه برای تماشای آن جمع شده بودند. اما باران به قضی شدید بود که وقتی از چنان ها میگذشتند همه سرها را خم کرده بودند و چیزی نمانده بود باد چترهایشان را با به آسمان ببرد. بازیکنان گریونور با رده سرخ و بازیکنان هفلپاف با های زرد قناری وارد زمین شدند. چند دقیقه بعد هری از روی حرکت لبهای خانم هوچ فهمید که میگوید سوار جاروآتون بشی هری پاهایش را از گلولای زمین بیرون آورد و سوار جاروی نیمبوس دو هزارش شد صدای سود که گویی از ته چاه در میآمد به گوش رسید و مسابقه آغاز شد هری به سرعت اوج گرفت اما باد او را از مسیر منحرف میکرد بعد از پنج دقیقه موش آب کشیده شده بود هدایت جارو لحظه به لحظه برایش دشوارتر میشد آسمان چنان تیره اوتار شده بود که گویی شب زودتر از موعد فرارسیده بود اکنون دیگر همه بازیکنان خیصه آب شده بودند و تشخیص آنها از یک دیگر برای هری امکان پذیر نبود هری دور زد که به سمت وسط زمین پرواز کند اما در همان لحظه دوباره آسمان برگیزد و چشم هری به جایگاه تماشاچیان افتاد آنچه دید حواسش را به کلی پرت کرد در پهنه تابناک آسمان سایه عظیم و سیاه یک سگ پشمالو خود نمایی و در بالای سندلیهای جایگاه بیحرکت ایستاده بود دستهای بیحس حری بر روی دسته جارو لغزید سرش را برگرداند و دوباره با چشم‌های جمع شده به ردیف ها نگاهی انداخت سک ناپدید شده بود حادثه عجیبی در شرف وقوع بود سکوت خوفناکی در ورزشگاه حکمفرما شد باد که با همان شدت میوزید گویی زوزه‌هایش را از یاد برده بود انگار کسی صدای این صحنه را قطع کرده بود انگار هری کر شده بود چه پیش آمده بود سرمایه آشنای نفرت انگیزی در وجود هری چنگ انداخت و به درونش نفوذ کرد هری متوجه شد که آن پایین در زمین بازی چیزی در حال حرکت است دست کم صد دیوان ساز که صورتهای ناپیدایشان به سمت او بود در زمین بازی ایستاده بودند هری احساس میکرد آب یخ در سینهاش انباشته میشود لبریز میشود و وجودش را فرا آنگاه دوباره آن صدا را شنید یک نفر در ذهنش جیغ میزد. یک زن بود حری و نه خواهش می کنم حری نه به جای اون منه بکشین غبار سفید میچرخید و در مغز حری نفوظ می تمام بدنش بیهست شده بود آنجا چه میکرد؟ برای چه پرواز می کرد او باید به با آن زن کمک می جان او در خطر بود یک نفر میخواست او را به قتل برساند حری در میان گوبار سفید رنگ پایین می آمد پایین تر رم کنین رم کنین صدای خنده وحشتناکی در گوشش پیچید زن همچنان جیغ می هر هری دیگر چیزی نفهم. های هری ناگهان باز شد روی تخت درمانگاه خوابیده بود و بازیکنان سرتاپا گلالود تیم گریفندور دور تختش را گرفته بودند هری ناگهان بلند شد مسابقه چی شد هیچکس چیزی نگفت حقیقت تلخ و ناگوار باخت همچون پتکی بر سرش کوبیده شد بعد از چند دقیقه هرمیون که صدایش میلرزید گفت دامبلدور خیلی عصبانی شده بود تا حالا ندیده بودم اینطوری عصبانی بشه وقتی از رو جارو افتادی، خودش به زمین رسوند و چوب رو به طرف دیوان سازا گرفت و اونو چرخوند. بعد بلافاصله یه چیز نقره‌ای از چوب دستش شلیک شد و به طرف دیوان سازا رفت و اونا هم فوراً از ورزشگاه خارج شدند. میگفت چرا دیوان سازا وارد مدرسه شدند؟ هری که به صدای جیغ فکر می‌کرد اختیار گفت جارون کجاست؟ هرمیون آهسته دستش رو پایین برد و از کنار پایش کیسه‌ای را برداشت. با جارو را به سمت بید کتک برده بود وقتی هرمیون کیسه را وارونه کرد مقدار زیادی خورد چوب روی تخت پراکنده شد تنها بقایایی که از دسته جاروی وفادار و خرد شده هلی باقی مانده بود شنوندگان عزیز برنامه روایت شب آنچه شنیدید چهارمین قسمت از تنظیم رادیویی رومان خریفاتر و زندانی آسكابان بود فردا شب پنجمین قسمت از این بازخانی را خواهید شنید تا آن زمان خدایار و نگهدار شما بسر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com